نوار با همکاری نشر روزگار تقدیم می کند <متصفح> گتبی بزرگ. نوشته اسکات فیدز جرالد فصل یک ای ای ای ای ای ای. سالها پیش وقتی جوان و خام بودم پدرم نصیحتی به من کرد که تا امروز آویزه گوشم است هر وقت خواستی از کسی ایراد بگیری حواست باشه که همه مردم دنیا هایی که تو داشتی رو نداشتن حرف دیگری نزد ولی از آنجایی که ما همیشه منظور من را با کمترین کلمات بیان می کردیم این طور برداشت کردم که منظورش چیزی بیشتر از این جمله بود و در نتیجه عادت کردم که قضاوتم در مورد دیگران را ابراز نکنم. همین دیدگاه باعث شد باطن عجیب و غریب خیلی از آدم ها برایم رو شود و البته خیلی از مواقع گرفتار آدم های وراج هرفهی بشوم. آدم های غیر معمولی خیلی زود این خصوصیت را در آدم های معمولی تشخیص داده به آنها میچسبند. این قضیه در کالج هم گریبان گیرم شد. تا جایی که به سیاستمدار بودن متهم شدم. چون سنگ صبور غریبه های بیقراری می شدم که بدون که بخواهم رازهایشان را با من در میان میگذاشتند. خیلی وقتا با دیدن نشانه هایی که از اقرار غریب رازی خبر میداد خودم را به خواب می‌زدم، به حواظ پرتی یا بیتوجهی به خصوص درباره جوانها آنها در درد دل کردن از لغاتی استفاده می کنند که گویی با خط های زیاد از روی دست هم نوشتند گزوات نکردن دیگران به امیدواری زیاد برمیگردد. پدرم خیلی حق به جانب میگفت که در زمان تولد مواهب زندگی مساوی تقسیم نمی‌شوند و من هم با همان حق به جانبی آن را تکرار می‌کنم و هنوز می‌ترسم با فراموش کردن این نکته چیزی را از دست بدهم. اما حالا با تمام فخری که به این صبوری می‌فروشم باید اعتراف کنم که صبوری هم حدی دارد. ممکن است انسان بنای رفتارش را چون صخره محکم بگذارد یا شل مثل باطلاق. اما از جایی به بعد دیگر اهمیتی به مبنای رفتارش نخواهد داد. پاییز گذشته وقتی از شرق آمریکا برگشتم دلم می‌خواست تمام دنیا لباس فرم بپوشد و خبردار بییستد و اصول اخلاقی تا ابد فراگیر شود. دیگر دلم با سرکشیدن به دل آدمها به دنبال گردش و ولنگاری نبود. آنو گتسبی از این حس حال من بیرون بود کسی که نامش را به این کتاب داده گتسبی مظهر تمام آن چیزهایی بود که از ته دل تغییرشان میکنم اگر شخصیت عبارت از یک سری رفتارهای پیوسته بدون شکست باشد چیز فوق‌العاده‌ای در مورد او وجود داشت نوعی حساسیت بیامان به وعدههای زندگی انگار به یکی از این دستگاه های حساسی وصل بود که لرزه‌های زمین را تا شعاع ده هزار مایل ثبت می‌کنند این حساسیت به آن چیزی که به آن خلق و خوی خلاق می‌گویند و ارج و زیادی برایش قائلان هیچ ارتباطی نداشت و بیشتر نوعی استعداد خارق العاده برای امیدبستن بود نوعی استعداد رمانتیک که نظیرش را در هیچ کس ندیدم و بعید می‌دانم در آینده هم ببینم هرچند گتسبی آغابت به خیر شد اما آنچه که علاقم را به قماقصه های زودگذر و شادی های کم دوام انسان ها از بین برده چیزی است که گتسبی را به دام انداخت و گرد و خاک کثیفی است که پشت سر رویاهای او به هوا بلند شد. خانواده من سه نسل است که در غرب میانه آدم های سرشناس و مرفه خراوی ها شبیه یک قبیله و بین ما داستانی است که تبارمان را به دیوک های بکلو اما سلسله دودمان من از برادر پدر بزرگم شروع می شود. کسی که در سال 1851 یکی دیگر را جای خود به جنگ داخلی فرستاد به این منطقه آمد و شروع به عمد فروشی آهن و وسایل فلزی کرد کاری که پدرم هنوز آن را ادامه می دهد. من هیچ وقت این اموی پدرم رو ندیدم ولی با توجه به تابلوی کم و بیش که از او به دیوار دفتر پدرم زده اند، گویا شبیه او هستم. من سال 1915 از دانشگاه نیوهیون فارغ تحصیل شدم، یعنی 25 سال بعد از پدرم و کمی بعد در آن اردوکشی دیرهنگام به آلمان شرکت کردم که اسمش جنگ بزرگ بود. از این مبارزه چنان لذتی بردم که مشعوف و بیقرار به آمریکا برگشتم. اما دیگر غرب میانه برایم نه تنها مرکز گرم و نرم دنیا نبود که بیشتر به حاشیه ریش ریش آن شباهت داشت این بود که تصمیم گرفتم به شرق بروم و وارد خرید و فروش سهام بشوم. هر که را میشناختم مشغول این کار بود و پیش خودم فکر کردم یک مجرد دیگر هم می‌تواند نانش را از این راه در بیاورد همه فامیل دور هم جمع شدند تا برایم تصمیم بگیرند انگار قرار بود برایم دبیرستان انتخاب کنند و در نهایت با چهره هایی در هم و مشکوک گفتند چرا خب باشه پدرم قبول کرد که من خارج یک سالم را بدهد و در بهار 1922 بعد از کلی فکر و بالا و پایین کردن به خیال خودم برای همیشه به شرق آمدم مهمترین کار پیدا کردن خانه بود اما با توجه به فصل گرمی که در آن بودیم و من هم تازه از جای سرسبز و پردرخت آمده بودم وقتی که در شرکت مرد جوانی پیشنهاد داد با هم خانه در حوالی شهر اجاره کنیم به نظرم فکر خوبی آمد خانه که پیدا کرده بود ویلای یک طبقه کلنگی آفتاب ای بود که برایمان مایی هشتا تا آب میخورد. اما در آخرین لحظه شرکت او را برای مأموریت به واشنگتن فرستاد و من مجبور شدم تنهایی به هومه شهر بروم یک سگ هم داشتم البته فقط چند روز قبل از اینکه فرار کند و یک ماشین دوجه قدیمی، یک کلفت فنلاندی هم داشتم که تختم را مرتب می کرد غذا میپخت و کنار اجاق برقی زیر لب به زبان فنلاندی ورد میخوااند چند روزی در تنهایی گذشت تا اینکه یک صبح مردی که از من هم تازه واردتر بود کلافه و مستصل سر راهم هم سبس شد و پرسید چطور میشه به وست اگرافت؟ جوابش را دادم و به راه افتادم دیگر تنها نبودم راهنما بودم راه بلد یک ساکن درست حسابی محل آن مرد بدون اینکه بداند به من حق آب و گل داده بود و این چنین بود که من با نورفشانی خورشید و سبز شدن انبوه شاخ و برگ درختها درست مثل رشد سریع درختها در فیلم هایی که دورشان را تند کرده باشن دوباره به همان اعتقاد کلیشه رسیدم که با تابستان زندگی دیگر بار از سر گرفته می شود. هم کلی مطلب برای خواندن بود و هم کلی سلامتی که قرار بود از آن هوای با تراوت بیرون بکشم ده دوازده جلد کتاب در زمینه بانکداری و اعتبارات و اوراق بهادار خریدم که با جلدهای قرمز و طلا در کتابخانه چیده شدند درست مثل پولی نو که از زرابخانه بگیری و البته قول دادند که رازهای سرب مهری را با من در میان بگذارند که فقط میداس آن پادشاه افسانه‌ای که دست به هر چیزی میزد طلا میشد. مورگان مولتی میلیاردر آمریکایی و مایک ناس، سیاست مدار خرپول رومی از آن با خبر بودند. البته به جد تصمیم گرفته بودم که کلی کتاب دیگر هم بخوانم. در کالج دستی به قلم داشتم و یک سال سلسله مقالات دهن برای گیل نیوز نوشته بودم که چیزی جز توضیح واضحات نبودند. تصمیم داشتم اینجور چیزها را به زندگیم برگردانم و خاصترین متخصصی بشوم که به آن لقب انسان جامعه اطراف دادهاند. شوخی نمیکنم بالاخره از یک پنجره بهتر می شود به دنیا نگاه کرد. اینکه توانسته بودم خانه در آمریکا اجاره کنم تصادف محض بود. خانه در آن جزیره باریک و پرهیاهوی قرار داشت که تا شرق نیویورک کش آمد و وسط آن همه عجایب طبیعی دو شکل زمینی غیرعادی هم دیده می شود. در فاصله 20 مایل از شهر یک جفت تخم مرغ غولاسا درست این هم قرار داشت که تنها به وسیله یک تو رفتگی خلیج مانند از هم جدا می شدن. درست وسط رامترین آب شور نیمکوره غربی یعنی حیات خلوت آب گرفته ی لانگ آیلند. این دو خشکی تخم مرغ شکل بیزی کامل هم نیستند و درست مثل تخم مرغ داستان کریستوف کلوم در نقطه تماسشان با زمین پخ شده اند. اما همین شباهت ظاهری هم بدون شک باعث سردرگمی پرندگانی می شود که از بالا به با آنها نگاه می کنند. ولی برای موجودات بدون بال جالبترین پدیده در مورد این دو تکه زمین تخم مرغی این است که آنها به جز شکل و اندازه در تک تک جزئیات با هم متفاوتند. من در تخم مرغ غربی یا همان وست اگ زندگی می کردم، همان که به شیکی تخم مرغ شرقی یا ایست اگ نبود. هرچند که برای توصیف تفاوت منحوس این دو تخم مرغ، شیک تصنعی ترین صفت ممکن است. خانه من درست در نوک تخم مرغ بود و فقط پنجاه یارد با تنگ فاصله داشت. چلانده شده بین دو خانه بزرگ که کرایه فصلشان دوازده تا پانزده هزار تا بود، خانه دستراستی با هر معیاری که حساب کنی چیز قولاسایی بود که به تقلید از امارت شهرداری نورماندی ساخته شده بود یک طرف امارت برج بلندی قرار داشت که زیر لایه تونوک ها مخفی بود یک استخر مرمر و بیش از چهل جریب باغ و چمن اینجا امارت گتسپی بود اما چون در آن زمان آقای گتسپی را نمیشناختم بهتر است بگویم به اینجا امارتی بود که شخصی به این نام در آن زندگی می‌کرد خانه من قناص جم و بود که توجه هیچ کس را جلب نمیکرد. از یک طرف به آب دید داشت و از یک طرف به باغ همسایه و دلم خوش بود که تنها با مایه هشتاد دلار همسایه میلیاردرها شده هم. آن طرف خلیج قصرهای سفید ایست اگ در کنار آب برق می زدن و داستان آن تابستان در واقع از همان اصری شروع شد که با ماشینم آنجا میرفتم تا با تام بیوکنن و زنش دیزی شام بخورم. دیزی نوه همان اموی پدرم بود و تام را هم از دوران کالج می و بعد از جنگ دو روزی را در شیکاگو پیش آنها بودم. تام هیکل تنومندی داشت و یکی از قوی ترین بود که در نیو فوتبال بازی کرده بود و به نوعی قهرمان ملی محسوب می شد. تام از آن دسته آدم هایی بود که در 21 سالگی به چنان اوجی می رسند که بعد از آن همه چیز در سراشیبی افول می افتد. خانوادهش خرپول بودند و در کالج به شکلی منزجر کنند پول خرج میکرد. حالا هم توری شیکاگو را ول کرده و آمده بود سمت شرق که دهن آدم از تعجب باز میماند یک نمونش اینکه از لیگ فارست یک تیم کامل از اسبهای مخصوص چوگان با خودش آورده بود. تصورش هم سخت بود که کسی در سن و سال من آنقدر پول داشته باشد که به تواند چنین ریخت و پاشتهایی بکند. نمیدانم برای چه سر از شرق درآورده بودند یک سالی را بدون هیچ دلیلی فرانسه بودند و بعد خوشخوشان به هر جا که جمعی چوگان بازی میکردن کشیده شده بودند دیزی پشت تلفن گفته بود که این بار قرار است بمانند ولی من که باورم نمیشد. البته از دل دیزی خبر نداشتم ولی مطمئن بودم تام همیشه در حسرت تجربه تکرار نشدنی هیجان بازی فوتبال باز هم به این طرف آن طرف کشیده خواهد شد خلاصه اینکه در اصر یک روز گرم و بادخیز در حال رانندگی به سمت ایستعگ بودم تا این دو دوست را ببینم دوستانی که به سختی آنها را میشناختم خانه عریض و طویلتر از آن چیزی بود که انتظارش را داشتم یک امارت شوخوشنگ سرخ و سفید بود به سبک مهاجر نشین های جورجیا و مشرف به خلیج چمن از کنار آب شروع می و بعد از یک چهارم مایل دویدن و پریدن از روی ساعتهای آفتابی و گذرهای آجری و باخچه های گر گرفته به در اصلی می رسید و دستاخر در کنار ساختمان چنان شتابی گرفته بود که به شکل پیچک های از دیوار بالا می رفت. نمای جلوی خانه با خطی از پنجره فرانسوی شکسته می شد که به شکل کامل به روی هوای گرم و بادخیز آن اصر باز شده بودند و نور گرم و تلای خورشید را در خود منعکس می کردند تام بیوکنن در لباس سوارکاری روی ایوان ایستاده و پاهایش را از هم باز کرده بود نسبت به دوران دانشجویی در نیوهیون فرق کرده بود به مردی سی ساله و تنومند با موهای پرکاهی و دهانی منقبض بدل شده بود که رفتاری متکبرانه داشت چشمهای درخشان و مغرورش بر پهنای صورتش مسلط شده بود و به او حالتی پرخاشگر داده بود. حتی شکل زنانه لباس سوارکاری هم نتوانسته بود زور زیاد آن هیکل گنده را بپوشاند. پاهایش طوری چکمه های براغش را پر کرده بود که بندهای بالای چکمه به زور بسته شده بود و وقتی شانهایش را حرکت می‌داد، بیشمار بی شمار از سفت و برجست زیر آن کت نازک خود را به رخ می کشید. ایکل بیرحمی بود که زور انجام خیلی کارها را داشت تونه صدای خشدارو را گرفتش ظاهر خشنش را خشنتر هم کرده بود. در صدایش رگههایی از بیتننایی ارباب منشانه، حتی در برخورد با کسانی که به آنها علاقمند بود به چشم میخورد البته در نیووهیون کسان زیادی بودند که نمیخواستند ریختش را هم ببینند. در صدایش چیزی بود که انگار می گفت حالا خیال نکنه چون از شما قوی تر و مردترم حرف باید حرف من باشه. ما در جمعه سال بالایی ها با هم بودیم و با اینکه هیچ وقت با هم صمیمی نشده بودیم همیشه تصورم این بود که قبولم دارد و با همان حالت طلبکارانه زمخت و گستاخی که مخصوص خودش بود دلش میخواهد از او خوشم بیاید. چند دقیقه ای زیر آفتاب ایوان حرف زدیم. تام در حالی که چشم های اطراف را می گفت جای خوبی گیرم اومده یک بازویش را دورم حلقه کرد و مرا به سمت منظره چرخاند که دست پت و پهنش را مقابل آن حرکت می‌داد. یک باغچه گود ایتالیایی نیم جریب گل سرخ و یک قایق موتوری دماغ که در کنار ساحل سرگردان بود اینجا مال دومن بود همون میلیونری که تو کار نفته این را گفت و دوباره مرا چرخاند البته با احترام و گفت حالا تو". از سرسرایی با سقف بلند رد شدیم و به جای پرنوری رسیدیم که رنگی صورتی داشت. انتهای این سالن از دو طرف با پنجره های فرانسوی پوشیده شده بود. پنجره ها نیمه باز بودند و روشنایی سفیدی را در مقابل سرسبزی بیرون که به نفهمی انگار توی خانه هم آمده بود به درون سالن می ریختند. باد در اتاق چرخید، پردهها را به تو و بیرون پفتاد، درست مثل پرچم‌هایی که سر چوب زده باشند و بعد پیچاندشان بالا به سمت کک عروسی که بر سقف نقش شده بود. بعد فرش ارغوانی را کمی لرزاند و ردی رویش انداخت، درست مثل وقتی که باد روی آب موج میاندازد. تنها چیزی که در اتاق تکان نمی‌خورد، کاناپه گولپیکری بود که دو خانم جوان گویی مثل بادکنکی که به نخ بسته شده باشد روی آن به سمت بالا شناور مانده بودند. هر دو لباس سفیدی پوشیده بودند و لباسشان چنان چین و تابی داشت که انگار بعد از پروازی کوتاه تازه در اطراف خانه به زمین نشستند. باید چند دقیقه‌ای به صدای پرده ها و غیش غیش که روی دیوار بود گوش کرده باشم که صدای گروم بی آمد و تام بیو کنن پنجره های عقبی را بست و باد حبس شده در اتاق از نفس افتاد و پردهها و غالی ها و آن دوزن جوان مثل باد آرام آرام روی زمین فرود آمدند. زن جوانتر برایم غریبه بود و روی کاناپه بدون کوچکترین حرکتی تمام قد دراز کشیده بود. کمی چانه‌اش را بالا گرفته بود انگار چیزی روی آن گذاشته که نباید تعادلش به هم بخورد و بیفتد. نمیدانم مرا دیده بود یا نه ولی بر روی خودش نیاورد و من آنقدر غافلگیر شده بودم که نزدیک بود زیر لب از اینکه با ورودم مزاحمش شدم عذرخواهی کنم. زن دیگر دیزی بود سعی کرد از جایش بلند شود و با یک حالت وظیفه شناسانه و با ظرافت کمی به جلو خم شد بعد خندید یک خنده کوچک زیبای بی دلیل من هم خندیدم و جلوتر رفتم گفت از خوشی نمیتونم تکون بخورم و انگار حرف خیلی خندهداری زده باشد باز خندید و چند لحظه دستم را در دستش نگه داشت طوری به صورتم نگاه کرد که انگار هیچ کس در دنیا نبود که اینقدر مشتاق دیدارش باشد این سبک خاص دیزی بود زیر لب گفت اسم خانوادگی دختری که هنوز در حال حفظ تعادل دراز کشیده بود بیکر است در مورد کردن کردنهای دیزی شنیده بودند که او این کار را می کند تا مردم مجبور شوند سرشان را به سمت او خم کنند حرف مفتی بی معنی که چیزی از دلربایی او کم نمی کرد بل لبهای خانم بیکر تکانی خورد و به شکلی نامحسوس سرش را برای من تکان داد و بلافاصله دوباره سرش را به عقب برگرداند گویا آن چیزی که در حال تعادل نگه داشته بود کمی جابجا جا شده و او را ترسانده بود باز چیزی شبیه عذرخواهی روی لبهایم نشست هر گونه تظاهر به بی‌نیازی مرا به احترام و می دارد. باز به سمت دختر دخترعمویم نگاه کردم که می‌خواست به آن صدای آهسته و لرزانش چیزی از من بپرسد صدایش از آن صداها بود که گوش تمام زیر و بمش را دنبال می‌کند انگار هر واژه چیدمانی از نوت‌های موسیقی بود که قرار نیست دوباره نواخته شود چهره غمگین و دوست داشتنی داشت با اجزاء روشن چشم‌های روشن و دهان روشن شورانگیزش نوعی هیجان در صدایش بود که مردهایی که عاشقش بودند به راحتی نمی‌توانستند آن را فراموش کنند نوعی میل به آواز در صدایش بود نوعی حالت فرمان دادن زمزمه به گوش دادن نوعی خبر دادن از کارهای مهیجی که انجام داده و هنوز یک ساعتی از آن را هم پیش رو دارد به او گفتم که در راه برگشتم به شرق یک روز در شیکاگو توقف کردم و خیلی ها به او سلام رساندند با صدای پرنشاطی گفت یعنی دلشون برام تنگ شده همه شهر افسرده شدن دادن چرخ سمت چپ عقب ماشین ها رو جای حلقه گل عزاداری رنگ مشکی زدن و هر شب یه ریز از سایل شمالی صدای ناله میاد حالی؟ تام بیا همین فردا برگردیم بعد یک دفعه بدون هیچ دلیلی گفت باید بچه اونو ببینی دوست دارم ببینمش خوابه سه سالشه تا حالا نیدیش نه نه نهیدمش. خب باید ببینیش، دخترم تام بیوکنن که بیقرار در اتاق میپلکید ایستاد و دستش را روی شانام گذاشت. تو چی کار میکنی نیک؟ خرید فروش سهام با کی؟ به او گفتم و او سفت و محکم گفت اسمشونم بگوشم گوشم نخورده دلخور شدم و خیلی خوشک و رسمی جواب دادم میخوره البته اگر توی شرق موندنی بشی بگوشت گوشت میخوره و معلومه که تو شرق مونم خیالت راحت این را گفت و به دیزی خیره شده باز تیز به من نگاه کرد انگار آماده بود که بحث ادامه پیدا کند و این جمله را بشنود که دیرونم اگه از اینجا جمع بخورم در این لحظه یک دفعه خانم بیکر گفت حتما آنقدر ناگهانی این را گفت که جا خوردم از وقتی وارد اتاق شده بودم این اولین ای بود که می میگفت انگار این کلمه خودش را هم اندازه من قافل گیر کرده باشد خمیازه کشید و با چند حرکت سریع و چابک بلند شد و وسط اتاق ایستاد و شکایت کرد که شدم یه تیک چو خدا میدونه چند وقت همینطور ولو شدم رو کاناپه دیزی با عصبانیت جواب داد اونطوری به من نگاه نکن تمام بعد از, از سعی کردم بفرستمت نیویورک خانم بیکر به چهار کوکتلی که تازه از آشپزخانه رسیده بود دست رد زد و گفت: نه ممنون، حسابی در حال تمرینم. تام نگاهی ناباورانه به او انداخت و گیلاسش را با چنان سرعتی سر کشید که انگار فقط یک قطر ته لیوان بود. آره، در حال تمرینی. اینکه تو بتونی کاری را پیش ببری فراتر از فهم و درک منه. نگاه کنجکاوَم را به خانم بیکر دوختم که یعنی چه کاری را قرار است پیش ببرد؟ از نگاه کردن به او لذت می بردم. دختری لاغر بود با سینه های کوچک و اندامی کشیده که موقع راه رفتن مثل دانشجو افسری شانههایش را عقب میداد و صافی بدنش بیشتر به چشم چشم های خاکستری خورشیدگونش به سمت من برگشت و با کنجکاوی مؤدبانه‌ای به من نگاه کرد و پرتو نگاهش از صورت خسته، ناراحت و جذابش به من رسید. در این زمان به ذهنم رسید که او را یا عکسش را جایی دیده بودم. با حالتی تحقیرآمیز پرسید: شما تو وستک زیندگی میکنی؟ یه نفر اونجا میشنسم؟ من هیچ کس اونجا نمیشنسم. گتسوی رو که دیگه باید بشناسید؟ دیزی گفت، گتسوی؟ کدوم گتسوی؟ میخواسم بگویم با او همسایهم که خبر حاضر شدن شام رو آوردن و تام بازوی ستپ را از زیر بازوی من رد کرد و طوری من را به اتاق دیگر برد که این کار داشت مهره را از خانه به خانه دیگر میبرد. دو خانم جوان نرم و آهسته با دستهایی که روی کمرشان گرفته بودند جلوتر از ما به اتاق صورتی رنگ رفتند که پنجره‌هایش رو به غروب باز شده بود و چهار شمعه روی میز زیر بادی که فروکش کرده بود پت پت کرد. دیزی با اخم گفت: "شمع بر چی؟" و با ناراحتی شامها را بین انگشت‌هایش خاموش کرد. دو هفته دیگر بلندترین روز سال و سپس به طرزی شوخوشنگ به ما نگاه کرد. تا حالا شده منتظر بلندترین شب سال باشید و وقتی که رسید یادتون بره من که همیشه این طوریم هم. خانم بیکر خمیازه کشید و گفت باید یه برنامه بریزیم دیزی گفت چه برنامه‌ای و نگاهی آجزانه به من انداخت مردم چه برنامه‌ای می‌ریزن قبل از اینکه بتوانم جوابی بدهم بغض زده به انگشت کوچکش نگاه کرد نگاه کن ببین چه بلای سرش اومده همگی به بند انگشت کبود و آبی رنگش نگاه کردیم تو این کارو کردی تام میدونم عمدی نبود اما تو باعث شدی و اینها همش به خاطر اینه که من با یه مرد قوی و گنده و یغور ازدواج کردم تام با دلخوری گفت از این کلمه یغور متنفرم حتی برای شوخی و باز دیزی تکرار کرد یغور گاهی دیزی و دوشیزه بکر همزمان حرف می زدن یعنی بدون اینکه جلوی هر زدن همدیگر را بگیرند حرف می زدن در هم بر هم و با که بدل به ورراجی هم نمیشد. متین بود مثل پیراهن‌های سفید و نگاه‌های بی‌حالشان که از هر شور و شوقی خالی بود آنها اینجا بودند و حضور من و تام را هم پذیرفته بودند و گاه از روی ادب و احترام ما را سرگرم می‌کردند یا اجازه می‌دادند ما سرگرمشان کنیم آنها می‌دانستند که به زودی شام تمام می‌شود و کمی بعد شب هم آرام آرام می‌گذرد و میرود به کارش شب‌های اینجا با غرب خیلی فرق داشت در غرب شبها تا به نقطه پایان برسند تند و تند از مرحله‌ای به مرحله دیگر می رفتند. آن هم در انتظاری براورده نشده یا در استراب رسیدن به نقطه پایان با دومین گیلاس بردو که تعم چوب پنبه می و مشروب گیرایی بود به دیزی گفتم دیزی آدم پیش تو احساس می کنه بوی از تمدن نبرده نمی از کشاورزی صحبت کنی یا هر چیز دیگه ای؟ از این حرف منظور خاصی نداشتم. اما از این حرفم تعبیری شد که هیچ انتظارش را نداشتم. تام خیلی محکم گفت، تمدن داره تیک پاره میشه. من که در مورد همه جا بیخ بد بینم. تا حالا کتاب طلوع امپراتوری های رنگارنگ نوشته این یرو گادارد رو خوندید؟ من که از لحن خشین تام تعجب کرده بودم گفتم، نه چطور مگه؟ خب، به نظرم کتاب خوبی و همه باید بخوننش، میگه اگه مواظب به سفید استفید نباشی این فاتحه این نجات خونده است. بحثش صد درصد علمیه، اثبات هم شده. دیزی با لحنی محضون که جدی هم نبود گفت تام خیلی جرفندیش شده، کتاب های میخونه می که کلمه های قلم به اون کلمه چی بود که اون دفعه تام بی حوصله نگاهی به دیزی انداخت و گفت آره این کتاب همشون علمی هن، این یارو تطوی همه در ر این دیگه بستگی به ما داره که نجات برتریم اگه مراقب نباشیم نجاتهای دیگه همه چی رو از چنگمون در میارن دیزی رو به خورشید چشمکی زد و زیر لب گفت باید دخل همشون رو بیاریم دوشیزه بکر گفت تو باید تو کالیفرنیا زندگی کنی تا تام چنان هیکلش رو روی صندلی جابجا کرد که قیژ قیژ صندلی حرفش رو قاط کرد تام گفت قضیه اینه که ما از نژاد سفید شمال اروپاییم، من هستم تو هستی تو هستی و و بعد از یک مکس کوتاه و حرکتی که به سرش داد دیزی را هم شمرد دیزی به من چشمکی زد ما تمام اون چیزایی که تمدن میسازن به وجود آوردیم آره علم هنر همه چی میفهمی در این تمرکزی که تام برای حرف زدن انجام میداد حالت رقت انگیزی دیده میشد انگار آن رضایت خاطری که پیش از این هم از خودش داشت و حالا بیشتر هم شده بود دیگر برایش کافی نبود. در همان لحظه تلفن زنگ خورد و پیشخدمت از ایوان به داخل امارت رفت و دیزی از همین وقفه ی ایجاد شده استفاده کرد و به سمت من خم شد و با شور و حرارت در گوشم زمزمه کرد. یه راز خانوادگی برات بگم در مورد دماغ پیشخدمته. <laughs> اصلا من امشب اومدم اینجا که همین رازو بشنوام. خوب، اون همیشه پیش خدمت نبوده قبل این تو نیویورک جای کار میکرده که سرویس دویست نفره نقره داشتن و کارش جلا دادن اونها بوده و اونقدر جلا داده و داده که بالاخره رو قدرت بویاییش اثر گذاشته. دوشیزه بکر به کردامه داد و اوذاش روز به روز بدتر شده آره همه چی براش بد و بدتر شده تا اینکه بالاخره مجبور شده کارشو ول کنه. برای یک لحظه آخرین عشعه خورشید روی صورت پرت تاب دیزی افتاد و او را دوست داشتنی تر کرد. به خاطر تون صدایش مجبور بودم نفسم را حبس کنم و به سمت او خم شوم. بعد آن برانگیختگی فروکش کرد و نورها با حسرتی کشتار یکی یکی از او دور شدند مثل بچه که دم غروب مجبور است خیابانی پرشور نشات را ترک کند. پیش قدمت برگشت و در گوش تام چیزی زمزمه کرد که سیگرمه تام را در هم برد. صندلیاش را به عقب هل داد و بدون کلمه حرف داخل امارت شد. انگار که قیاب تام چیزی را در درون دیزی برانگیخته باشد، باز هم با صدایی پر حرارت و آواز مانند به جلو خم شد. خیلی خوشم میاد که تو رو سر میزم میبینم. تو منو یاد گل سرخ میندازی. اینجوری میست؟ و به دوشیز بیکر نگاه کرد تا تاییدش را بگیرد. یک گل سرخ؟ البته این درست نبود. من هیچ شباعتی به گل سرخ نداشتم. او فقط داشت بداه گویی میکرد. حرارت وصف ناپذیری از او منتقل میشد. انگار قلبش در پس آن کلمات نفسگی رو پرهایجان میخواست به طرفت بپرد. ناگهان دستمال صفرش و روی میز انداخت و معذرت خواست و به ساختمان رفت. من و دوشیزه بکر بدون اینکه که منظوری داشته باشیم نگاه کتایی رد و بدل کردیم. میخواستم چیزی بگویم که او تکانی روی سندلیش خورد و با حالتی دهنده گفت ایس. پچپچه یک که از اتاق بغل به گوش می رسید دوستانه نبود. دوشیزه بکر بدون خجالت به جلو خم شده گوش تیز کرده بود تا بهتر بشنود. پچپچه درست وقتی که داشت نظمی به خودش می گرفت یک بار فروکش کرد و بعد با هیجان اوج گرفت و یک بار به کل بریده شد. گفتم این آقای گادسبی که حرفشو زدید همسایه منه حرف نزن میخوام سر در بیارم چی شده بیخبر از همه جا پرسیدم مگه دوره اتفاقی میفته دوشیزه بکر در حالی که تعجب کرده بود گفت یعنی میخوای بگی نمیدونی فکر کردم همه میدونم من نمیدونم با شک پرسید چرا خب تام یه معشوقه تو نیویورک داره مات مپود گفتم ماشوقه داره دوشیزه بکر تایید کرد باید اینقدر شرم و حیا داشته باشه که سرشام به تام زنگ نزنه شما اینجوری فکر نمی کنی؟ تا بخوام حرفش رو هضم کنم صدای کشیده شدن لباس دیزی و جیر جیر چکمه های چرم تام آمد و آن دو برگشتند سر میز دیزی با روی گشاده و صدای رسا گفت کارش نمیشه کرد سر جایش نشست و با نگاهش چهره دوشیزه بیکر را زیر رو کرد و بعد به من نگاه کرد و ادامه داد. یه سر رفتم تو حیاط هوای رومانتیکیه یه پرنده رو سبزه ها بود فکر کنم بلبل بود. باید با کشتی های کنارد یا وایت استار اومده باشه داشت آواز میخوند صدایش باز آوازگونه شد شده گفت خیلی رومانتیکه نه تام؟ تام گفت خیلی رومانتیکه و سپس با لحنی درمانده به من گفت. اگه بعد شما انوز روشن بود میخوام ببرمت رو ببینی. باز هم از درون امارت صدای زنگ تلفن بلند شد دیزی قاطعانه سرش را برای تامتکان داد و موضوع استبل و در واقع هر موضوع دیگری در هوا محو شد